شما ماشنوانی عزیز اینجا توکیو صدایی ما رو از ان اچ Japan به زبان فارسی میشنوید امروز سه‌شنبه 5 تیر ماه برابر با 25 ژوئن من ناهید نیکساد از استدیو ان اش به همراه همکارم محبوبه رجبی تازه‌ترین خبرها رو تقدیم شما می‌کنیم اتوبوس حامل دانش, دانش آموزان یک مدرسه ژاپنی روز دوشنبه در شهر سوژو در استان جانگسو چین مورد حمله مردی قرار گرفت که گمان میرود یک طبعه چینی باشد این حادثه موجب زخمی شدن دو ژاپنی و یک زن چینی شد حال زن چینی وخیم است مقامات سرکنسلگری ژاپن در شانگهای گفتند که این مرد چیزی که به نظر میرسید چاقو باشد را به همراه داشت این حمله زمانی رخ داد که اتوبوس مدرسه به ایستگاه اتوبوس رسید. یک زن ژاپنی و فرزندش که در ایستگاه اتوبوس بودند، زخمی شدند اما جانشان در خطر نیست و به بیمارستان منتقل شدند. یک زن چینی که راهنمای اتوبوس بود، مورد حسابت چاگوگا قرار گرفت و در وضعیت وخیمی قرار دارد. این مرد بازداشت شد و مقامات در حال بازپرسی از او هستند. این ایستگاه اتوبوس در منطقه مسکونی به فاصله حدود یک کیلومتری شمال مدرسه ژاپنی قرار دارد. یک مجتمع آپارتمانی نیز در این نزدیکی وجود دارد که های زیادی در آنجا زندگی می‌کنند. مرگ 22 نفر در سوزی که روز دوشنبه در یک کارخانه باتری لیتیومی در نزدیکی سئول کره جنوبی رویداد داد، تأیید شده است. مقامات سازمان آتش نشانی با استناد به اطلاعات شاهدان گفتند که آتش پس از انفجار سلولهای باتری یکی پس از دیگری در این کارخانه در هواسئونگ در استان یونگی آغاز شد حدود سی هزار باتری لیتیومی در این مکان وجود داشت آنها گفتند که قربانیان شامل 18 طبعه چینی دو طبعه کره جنوبی و یک طبعه لاوس هستند اما ملیت یکی از قربانیان هنوز مشخص نشده است بیشتر از در طبقه دوم کارخانه پیدا شدند، جایی که کارگران مشغول بررسی و بسته بندی محصولات بودند. مقامات گفتند، علیرغم وجود پلکانی که به بیرون منتهی میشد، قربانیان نتوانستند فرار کنند. رئیس جمهور یون سوکیول دوشنبه شب از این مکان بازدید کرد. رئیس جمهور کره جنوبی وجود مواد قابل اشتعال در نزدیکی خروجی اضطراری را عامل مرگ و میر دانست که به گفته او مانع فرار کارگران از داخل ساختمان شد. او به مسئولان دستور داد تا علت وقوع این حادثه را مشخص کرده و اقدامات لازم برای جلوگیری از آن را برای جلوگیری از تکرار آن را انجام دهند. ناروهیتو امپراتور ژاپن و ملک ماساکو در یک سفر رسمی به بریتانیا هستند. روز دوشنبه امپراتور از مکانی بازدید کرد که به آن علاقه داشته است. رودخانه تیمز، او به دیدن صد تیمز رفت، دروازه کنترل سیل که بیش از چهار دهه از لندن محافظت کردند. او تاریخچه مسیر آبی تیمز را، طی تحقیقات تکمیلی در دانشگاه آکسفورد کمی پس از ساخت این دروازه ها مطالعه کرد او آن دوران را در خاطراتش با عنوان تیمز و من همراه با تجربیات دیگری از جمله رفتن به بارها شرح داد بعد در همان روز امپراتور به یک مهمانی خوشامدگویی رفت جایی که صدها نفر از جمله افرادی از گروه جپن سوسایتی که از طریق تجارت، هنر و دانشگاه روابط دو کشور را تقویت کرده اند از او استقبال کردند. امپراتور ناروهیتو طی یک سخنرانی گفت این ارتباطات بین مردم است که جوامع را به جلو می برد و پایاهای مبادلات بین کشورها را ایجاد می کند. او گفت که به ویژه از دیدن جوانانی که در چنین تجربیاتی شرکت می کنند خوشحال است و امیدوار است که شاهد دوستی و حسن نیت بیشتر باشد. امپراتور ناروهیتو و ملک ماساکو روز سهشنبه با پادشاه چارلز و ملکه کامیلا دیدار خواهند کرد. آنها در یک زیافت رسمی شام در کاخ باکینگ شرکت خواهند کرد. دولت روسیه سفیر امریکا در موسکو را برای اعتراض به حمله مرگبار اوکراین به کریمه احزار کرده است. روسیه میگوید در این حمله از مشرک های ایتاکومس که امریکا ارائه داده استفاده شده است. وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه لین تریسی نماینده امریکا را به خاطر این حمله احزار کرد. بنا به اعلام وزارت دفاع روسیه در این حمله از پنج موشک دوربرد اتاکومس مجهز به کلاهک خوشی استفاده شده است. مقامات روسیه مستقر در سواستوپول گفتند که در حمله یکشنبه چهار نفر کشته و 153 نفر از جمله کودکان زخمی شدند. وزارت امور خارجه به این نماینده گفت که امریکا با ارائه پیشرفته ترین تسلیحات به اوکراین در واقع به یک طرف درگیری تبدیل شده است. این وزارتخانه همچنین گفت که امریکا با اوکراین در این حمله مسئولیت برابر دارد. این وزارتخانه هشدار داد که این حمله قطعا اقدامات تلافی جویانه در پی خواهد داشت. میخائیل پودولیاک مشاور رئیس جمهور اوکراین از این حمله دفاع کرد و روز دوشنبه گفت که کریمه سرزمینی است که توسط روسیه اشغال شده است و محل یک جنگ تمام ایار است. رهبران اروپایی قصد دارند برای محافظت از تجارت خودروسازان خود بر خودروهای الکتریکی چین تعرفه‌های موقتی وضع کنند. با این حال آنها روز دوشنبه گفتند که درها برای گفتگو باز است و قصد دارند در این هفته گفتگو کنند. مقامات کمیسیون اروپا در حال حاضر ده درصد مالیات بر تمام خودروهای الکتریکی وارداتی را اعمال می کنند. آنها در اوایل این ماه اعلام کردند که بر واردات از چین تا سیوه هشت و یک دهم در درصد تعریفه های بیشتر اضافه خواهند کرد. آنها در حال بررسی یارانه های دولتی برای خودروها بودند و میگویند این کمک ناعادلانه است این مقامات گفتند که در مذاکراتی که در بروکسل برگزار می شود به دنبال یک راه حل مؤثر هستند با این حال قرار است اگر آنها نتوانند راه حلی پیدا کنند این جریمه ها از اوایل ماه آینده اعمال شود اولاف شولز صدر اعظم آلمان در رویدادی در برلین سخنرانی کرد و گفت که باید حرکت و پیشرفت جدی از طرف چین را دید. مقامات وزارت بازرگانی چین میگویند خودروسازان داخلی تمام تلاش خود برای همکاری را انجام دادند. با این حال آنها معتقدند که نرخ‌های مالیات اروپا تنبیهی است. کارشناسان ایمنی هوایی ژاپن پس از تصادف مرگبار در باند فرودگاه هاندای توکیو توصیه کردند که کارکنان کنترل ترافیک هوایی بیشتری در برج مراقبت و هوشدارهای ایمنی بیشتری در فرودگاهها به کار گرفته شود. اقدامات پیشنهادی هیئت منصوب شده از سوی وزارت حمل و نقل روز دوشنبه منتشر شد. در حادثه روز دوم ژانویه در فرودگاه هاندا پس از به زمین نشستن یک هواپیمای خطوط ژاپن هوا و برخورد آن با هواپیمای گارد ساحلی ژاپن در باند فرودگاه پنج نفر از هواپیمای گارد ساحلی کشته شدند کارشناسان گفتند که برای کمک به هماهنگی بلند شدن و فرود پروازها به کارکنان بیشتری در برج مراقبت برای کنترل ترافیک هوایی نیاز است کارکنان جدید برژ مراقبت قبل از آغاز فصل مسافرت های تابستانی در هشت فرودگاه اصلی ژاپن، از جمله نیو چیتوسه، هانیدا، ناریتا و کانسای شروع به کار خواهند کرد. پایان پخش اخبار از NHK World ژاپن. در اینجا من ناهید نفساد به اتفاق سایر همکارانم توجه شما را به ادامه برنامه‌های های این ساعت جلب می کنیم. تندرست باشید.